سوره مبارکه احقاف هست آخرین حامیم از حوامیم هفتگانه همون طوری که قبلا ارز کردم در همه حوامیم یک موضوع هست فدع الله مخلصینه له الدین در حاجاتتون در مشکلاتتون در مصیبت‌هایتون فقط الله را فریاد بزنید به از الله عزوجل از کسی دیگر کمک نخواهید از کسی دیگر امداد نطلبید باز در حوامیم بعد از حامی مومن در هر حامی می یک شبهی یک اشکالی و سوالی پاسخ داده می شد در جاسیه سوره الجاسیه ما خاندیم که از سوی مشرکین گفته می شد چون پدران ما آبا و اجداد ما این افراد را این شخصیت ها را صدا می زدند، فریاد می زدند، از آنها کمک می طلبیدند. ما هم اونها را صدا می زنیم، فریاد می زنیم که خداوند عزوجل فرمود ثم جعلنا که على شریعت من الامر فتبعها. شما دارای شریعتی از جانب پروردگار هستید، روشی هستید که باید شما پیروه اون روش باشید نه اینکه که آبا و اجدادی که اونها هیچی نمی دونستند حال در سوره حامیم الاحقاف که آخرین حامیم هست. اشکال دیگر اون اشکال دیگر اینه که اونها می گفتم اگر اونها نتوانند مشکل ما را حل کنند. نتوانند برای ما شفاعت و سفارش بکنند. یا فریاد ما را نشنوند. حد اقل این هست که در ذکر و نام اونها برکاتی هست که ما وقتی که نام اونها را ورد میکنیم، نام اونها را ذکر میکنیم، اون برکات حاصل میشه در زندگی ما برکت میآید. آید خدای عزواجل در این سوره مبارکه پاسخ میده که کدوم برکت؟ چی خیری در اونها هست؟ اگر خیری در ذکر خدایان بود، در ذکر آلیه بود، در فریاد زدن اونها بود، خم اقوام گذشته هم مثل شما غیر خدا را پرستش می کردند، غیر خدا را عبادت می کردند، وقتی که از سوی پروردگار معاخزه شدند، از سوی پروردگار به عذاب گرفتار شدند، اون خدایان هیچ کاری نتونستان برایشون بکنند. فلاولا ناصرهم، چرا یاریشون نکردند؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها انهایی که بغیر از الله اونها را به عنوان تقرب معبود گرفته بودند اونها چرا نتوانستند که پیروان خودشان را و عابدان خودشان را نجات بدهند؟ چه خیری تو اینها هست؟ چه نصرتی تو اینها هست؟ علا ای حال در این سوره مبارکه شبهه دیگر و اشکال دیگر و ایراد دیگر که در رابطه با این موضوع هست پاسخ داده میشه و در این سوره خدای عزواجل چهار دلیل دلیل نقلی بیان میفرماید یک دلیل عقلی و یک دلیل وحی هست سپس مطالبه دلیل عقلی و نقلی میشه از مشرکان که شما بیارید دلیلی دارید بیارید انوان کنید شما به چه دلیل غیر خدا را فریاد میزنید و در پایان موضوع محوری سوره بیان میشه و همچنین زجر و تخویف و تبشیر و نیز دلیلی هست برای اثبات قیامت این سوره را میگن سوره احقاف چرا این سوره احقاف نام دارد احقاف جمع حقف است و حقف میگوین توده ریگ را به تعبیر ما ها ریگستان را میگویند چون که در این سوره ذکر قومی آمده که در ریگستان زندگی میکردند در احقاف زندگی میکردند و اون قوم قوم عاد هست خدای تعالی این قوم را با تعبیرهای مختلفی یاد میفرماید اینجا قوم احقاف اینها در حض، شمال شمال حضرموت یمن یه ریگستانی بود احقاف گفته میشد اونجا زندگی میکردند اونجا محل سکنایشون بود خدای عزوجل پیامبر خود حضرت هود را برای اینها مبعوث فرمود اما اینها از پیامبر حرف شنوی نکردند از انذار اون پیامبر نترسیدند خدای تعالی عذاب برای اینها آورد که اون عذاب را و ذکر عذاب را در همین سوره میخوانیم. اما ابتداءا تمهید مع ترغیب هست خداون می فرماید حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم این کتاب که تدریجان تدریجا نازل شده از جانب اون ذاتی که عزیز و حکیم هست اون ذاتی و اون پروردگاری که غالب هست و کارهایش با حکمت هست قبلا خدمت شما ارز کردم تنزیل یعنی کم کم نازل شدن یکی از عزیزان اینجا سوالی نوشته که شما قبلا هم گفتید تنزیل یعنی کم کم نازل شدن قرآن تدریجا نازل شد آیه آیه نازل شد و سوره سوره نازل شد در حالی که ما صبح در سوره مبارکه ارز کنم که جاسیه بود دیم که اینا انزلناهو فیلات در سوره دخان خواندیم انا انزلناه فی مبارکه ما نازل کردیم انزال به معنی یک بار نازل شدن اونجا عرض کردم که یک بار نازل شد از لوح محفوظ به سماع دنیا اون یک شب نازل شد اونجا درسته در اون شب انزال شد اما بعدا بر قلب اطر رسول الله صلی الله علیه وسلم تنزیل یعنی تدریجان نازل شد لذا این کتاب تدریجا ناظر شده از جانب اون ذاتی که هم غالب هست هر کاری میتونه انجام بده الحکیم حکیم است کارها را با حکمت انجام میده با تدبیر انجام میده فقط از قدرتش کار نمیگیره حاکمانه انجام نمیده حکیمانه انجام میده ما خلقن السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و أجل مسمع اینجا در اولین دلیل عقلی خداوند از و جل حدف آفرینش آسمانها و زمین را ذکر می‌فرماید. ما خلقنا سماوات والارد ما نیا فریدیم آسمانها و زمین و ما بین انها را الا بالحق مگر برای اظهار حق یعنی حق را نشون بدیم که مردم دنیا شما بفهمید که حق چیه و حق کیه و اون ذاتی که حق عبادت را دارد کدوم ذات است همون طور که اصحاب گفتند ما باید ربی را پرستش بکنیم که رب آسمانها و زمین باشد فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهن لقد قلنا اذن شططا ما ربی را رب می پرستیم که آسمان رب آسمانها و زمین باشد غیر از اون رب کسی دیگر را نمی خانیم اگر بخانیم زیاده گفتیم، اگر بخانیم افراد کردیم، ما افراد نمی کنیم، زیاده روی نمی کنیم، فقط رب آسمانها و زمین را، پروردگار می فرماید، اون رب منم ما خلقنا السماوات والارض، ما نیا فریدیم آسمانها و زمین را، و ما بین آسمانها و زمین را، الا بالحق، مگر برای اظهار حق، ایلی دل على قدرتنا، تا که دلالت بکند بر قدرت ما که قادر مطلق مایم ما بقیه نیستند. صبح ارز کردم که مردم مردم دنیا نسبت به پیشوایان خودشون چون محبت دارن گاهی حد و مرز محبت را نمیشناسن شناسند افراد می گروهی میگویند می گویند هدف آفرینش آسمان ها و زمین ایسا بوده. پیروان ایسا میگن گروهی میگن هدف آفرینش آسمان و زمین سیدنا علی بوده خدا به خاطر علی خلق کرد بعضی میگن خدا به خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق کرد این روایت ها یا موضوع هست یا ضعیف هست خدای تعالی آسمان ها و زمین را برای اینکه حق روشن بشه برای اینکه خدا را بشناسیم به خاطر اینکه خدا را تنها عبادت کنیم یک تا پرست باشیم قدرت خودش را نشان بده هر جا خدای تعالی بر قدرتش استدلال میگیره از پیدایش آسمان ها و زمین این پیدایش آسمان ها و زمین را ما ببینیم آیا این کار انسان است؟ هرگز همون مشرکان هم اعتقاد داشتن که کار خدای ما نیست ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض از این مشرکانی که لا تو ازارا پرستش می کنن بپرسید که آسمان و زمین را کیا فریده؟ لیقولن الله اونا حتما حتما پاسخ می که خدای عز و است پس خداوند می ما این آسمان ها و زمین را نیا فریدیم مگر برای حق برای اظهار حق تا انها بر قدرت ما دلالت کنند حضرت جلال الدین رحمه الله در تفسیر جلاله می فرمید لیدل على قدرتنا و وحدانیتنا بر قدرت و وحدانیت ما چون دیگران قدرت این را ندارند و اجل مسمع انها را ما آفریدیم هم اینجا توحید هست هم اینجا معاد هست مبدا و معاد یعنی این آسمان ها و زمین همیشه نیستند برای یک مدت معینی اون مدت را الله میداند برای مدت مشخصی ما آفریدیم خب از این آیات اهل انابت اهل ایمان کسانی که در وجودشون خوف هست از این آیات درس میگیرند اما غیر اونها انهایی که منکر توحید خدا هستند، انها اعراض میکنن از این آیات، روی گردانی میکنند، الله فرماید، والذین كفرو عَمَّا أُنذِرُوا معرضون کسانی که کفر کردند، کسانی که با خدا شریق گرفتند، ای جهد وحدانیت الله، اونهایی که وحدانیت خدا را انکار کردند دیگران را با خدا شریک ساختند اما انذروا معرضون از آنچه که بیم داده میشوند اعراض می کنند از عذاب بیم داده میشن پشت میدند از شرک بیم داده میشوند اونها اعراض میکنند یعنی قبول نمیکنند حال اینها اختلافشون چیه با اهل ایمان با پیامبران با اهل توحید اختلافشون در اینه که اونها میگن تنها خدا را ما صدا نمیزنیم تنها از خدا ما کمک نمیطلبیم غیر خدا هم خداوند از زوجال در این آیه مطالبه دلیل میکند از عموم مشرکین عموم مشرکین ببین من دون الله هر کسی که غیر خدا را صدا میزند چه اون غیر خدا لا تو باشه؟ چون غیر خدا جن باشه، فرشته باشه، انسان باشه، چه کسانی که سیدنا ایسا را فریاد می زنند، بقیه انبیارا، اولیارا، ایمرا، سلحارا، هر کسی را که صدا می هر کسی که غیر خدا باشه در در مندون الله داخل است. خداون می فرماید، خب کسی را صدا بزنید که خالق آسمان و زمین است این قدرت فوق العادر دارد، اینهایی که شما به غیر از خدا صدا می به ما نشون بدهید که اینها در این زمین چه پیدایشی دارند چه چیزی خلق کردند مخلوق اونها را به من نشان بده اثر قدرتشون را به من نشان بده یا اصلا اثبات بکن که آیا اینها در پیدایش آسمانها با خدا دست داشتند نقش داشتند شراکتی داشتند برای این ادعا ادعای ادعا تخالی کافی نیست دلیل بیار اثری از انبیاء گذشته و سخنی که از یکی از انبیاء نقل بکنی بیار لذا الله می فرماید قل ارایتم ما تدعون من دون الله به آنان بگو به من خبر بدهید ما تدعون من دون الله آن خدایانی آن معبودانی آن آلهی که شما فریاد میزنید شما دعا میکنید شما صدا میکنید من دون الله بغیر از الله ارونی به من نشان بدهید ماذا خلق من الارض انهاد از زمین چی پیدا کردند کدوم بخش مخلوق اون هاست كدوم قسمت را اونها خلق کردند خداوان مفرماد ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا وجه تمعولا ان هايك شما غير خدا انها را صدامي زنید همه انها جمبشن دست بيکی بدن یه مقاسی هم نمیتون اندرس کنن لن يخلقوا ذبابا انقد قدرت ندارند جتور شما انها را صدامي زنید اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات؟ یا آیا برای اونها شرکتی هست در پیدایش آسمان ها؟ اونها در پیدایش آسمان ها العیاض بالله شریک خدا بودند با خداک همکاری داشتند معاونتی داشتند ایتونی بکتاب من قبل هذا این مطالبه دلیل نقلی هست یک کتاب قبل از این بیارید که این مطلب را اثبات کند قبل هازا یعنی قبل از قرآن او اثارت من علم یا آثار علمی بیارد آثار علمی یعنی دلیل نقل از انبیاء گزشته قال عکرم ومجاهد ومقاتل و, و عن الانبیاء تفسير معالم التنزيل گفته این مفسری میگوین روایت از انبیاء بیارد که انها نقش داشتن شراکتی داشتن در پیدایش آسمانها یا زمین این کنتم صادقین اگر شما راست میگوید خب مسلمه که اینها هیچ نقشی نداشتند هیچ قدرتی ندارند هیچ پیدایش و خلقی ندارند وقتی که ندارند حال فتوه پروردگار را درباره اینها بشنوید خداون می فرماید اینهایی که غیر خدا را صدا می زنند من دون الله را برای حاجات خودشون می طلبند از اونها کمک می خواهن از اینها نیست گمراه ترین انسان های روی زمین اون انسان هایی هستند که با خدا شریک می گیرند دیگران را صدا می زنن ببینید شرکت اینجا هر نوع شرکتی باشد، ولی اینجا ذکر سجده نیامده آمده، ذکر رکوع نیامده آمده، ذکر تواف نیامده آمده، اینجا ذکر چی آمده؟ دعا آمده. از اول سوره مؤمن تا اینجا هی تاکید داریم و ارز میکنیم که دعا اصل عبادتی، دعا مخ عبادتی، دعا غیر الله، یعنی عبادت غیر الله، بس از غیر خدا خواستن، بسیار سنگینه و این انسانی که از غیر خدا حاجات می طلبد قرآن می پروردگار میگه این گمراه ترین هست و من اضل من من من دون الله چه کسی گمراه تر از اون انسانی که یدعو فریاد می زند دعا میکند من دون الله از غیر الله اس کسانی که غیر خدا هستند اونهایی که ملایس تجیب له الیوم القیامه انهایی که اجابت نمی کنند او را تا روز قیامت تاروز روز قیامت نمیتونن جواب بدن تا روز قیامت که نه که هرگز ابدا نمیتونن که اجابت بکنند چرا نمیتونن اجابت کنند دلایل زیادی داری یکی از دلایلشون اینجا دلیل اصلی که اون قدرتی بیشاره نداره اون خودش موتاج خداست و هم عن دعائهم غافلون آنها از دعای اینها بیخبرند نمی که فلان انسان ما را صدا زده خبر ندارند انهایی که می و می اگر انسانهای صالحی باشند اولیا خدا باشند اونها در بهشت خداوند در ارس کنم که ناز و نعمت پروردگار عیش میکنند در عالم برزخ در لذات و نعمتها ها هستند اونها دیگه از پشت سر خبری ندارند، اگر بد باشند به عالم و مصیبت های خودشون گرفتار هستند از پشت سر خبری ندارند و هم عن غافلون از دعای اینها از فریاد اینها از صدا زدن اینها بیخبرند ببینید چقدر آیه تسریح می کند روشن می کند بعد از این چی خفایی می ماند، چی چیزی مخفیه و روزی که خداون می فرماید حشر بشوند مردم همون معبودان دشمن این آبدان می شوند دقیق و اذا حشرن ناس زمانی که مردم حشر می شوند مردم از قبرها بلند می شوند کانو لهم اعداء کانو می شوند همون معبودان لهم برای این عابدان اعداء دشمن و کانو به عبادتهم کافرین و نسبت به عبادت اینها منکر می منکر می شوند, منکر می شوند، می ما،, ما را شما عبادت نکردید چطور منکر می القرآن يفسر بعضه بعضا ببینی بقیه آیات چی میگویند الله تعالی میفرماید فَكَفَ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ در سوره مبارکه یونس هست که این معبودان متبوعان میگویند خدا گواه است و گواهی خداوند کفایت میکنه که ما از عبادت شما بخبرین شما ما را عبادت کردید؟ ما را صدا زدید؟ از ماها جد خواستید؟ ما خبر نداریم فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم ان عبادتکم لغافلین و در سوره در جای دیگه پروردگار می و یوم یحشرهم جمیعا همی را عابد و معبود را خدا بلند میکنه ثم یقول للملائکه چون بعضی از کسانی که مردم اونها را مشرکین مکه به خصوص اونها را عبادت می‌کردند ملائکه بودند به ملائکه خداوند می‌فرماید از اونها می‌پرسد اولا اولایاکم كانوا یعبدون یعنی شما را عبادت می‌کردند ببین ملائکه که شب و روز در گردش هست و داره امور ما را انجام میده و کارها ما را انجام میده به دستور خدا برای ما باد می‌آره برای ما باران می‌آره برای ما مسائل دیگر را انجام میده اون ملائکه هم بی خبرند قالوا سبحانک انت ولینا من دونی این پروردگار تو پاکی تو حامی ما هستی انها نیستن تو دوست ما هستی اونها نیستن بل کانو یعبدون الجن انها جنات را پرستش میکردند ما را پرستش نمیکردند وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانت عبدون شرکا میگن شما که ما را پرستش نمیکردید پس ببینید در روز قیامت از عبادتشون غافل هست و آنها الان از عبادتشون غافلان و در روز قیامت دشمن آبادان میشوند و مخالف اونها میشوند ببینید پس شما کسانی که غیر الله را فریاد میزنید دلیلی ندارید اما وقتی که دلائل توحیدی برای شما در قران خنده میشه نسبت به قرآن توهین میکنید قرآن را میگی سر وإذا تتلى عليهم آياتنا مبينات هر گبرانان تلاوت میشه آیات بیینات ما آیات روشن ما قال الذين كفروا للحق لما جاءهم كفار میگن به حق حق صبح ارث نام هاي قران از چون حق است واقعيت و حق را اثبات می کند حق که پیش آمده می هذا سحر مبین این جادوی آشکاری هست قبلان خدمت شما این نکته را ارز کردم چرا به قرآن می جادو چرا نمی یک سخن بیجا یک قول علی عزبالله باطل به دلیل اینکه قرآن تأثیر عجیبی در میان آحاد داشت در میان توده داشت هر روز ده ها نفر گرویده قرآن و به قول معروف شکار قرآن می شدند لذا اینها مجبور بودند توجیه بکنند گفته این جادو هست هذا صحرون مبین ام یقولون افترا مشرکین هم سرگردان بودند نمی دونستند بگن گاهی می گفتند جادو، گاهی می گفتند افترا گاهی پیغمبر را می گفتند کاهن، گاهی مجنون ام یا به من باله است، بلکه اینها میگن این پیغمبر از خود درست کرده، ای رسول مکرم، تو به آنها بگو، قل انتفتریتوه اگر من او را افتراف کردم فلا تملكون لی من الله شیعه شما مالک من نیستید از اذاب خدا چیزی یعنی چی؟ یعنی اگر من کرده باشم خدا تعالا مرا به گرفتار میکنه، مواجه میکنه. شما اون وقت نمیتونیم مر از عذاب خدا نجات بدید شما نمیتونید نجاتم بده زیرا خداوند بر اساس عادت هر کسی که قلبیس بکند حق را با باطل خلط بکند خدا مواخذش میکنه چنین افرادی دعوتشون نهزتشون ادامه نمیابد به پیش نمیره تمام کسانی که دعوت نبوت کردند خود نبوت یک جایگاه مقدسی هست اما بدروغ دروغ نبوت کردن اونها نهزتشون ادامه نیافت تمام شد لذا اگر من افترا گفت باشم فلا تملکون لی من الله شيئا شما برای من مالک چیزی از عذاب خدا من الله ای من عذاب الله از عذاب خدا نخواهید بود هو اعلم بما تفيضون فی خدا بهتر میدون به اون مباحثی که شما وارد اون شدید شما دروغ های خرافاتی چیزهایی که شما وارد اونها بشودی، خدا بهتر میداند بین من و بین شما خدا کافی هست از نظر گوا کفا بهی به شهیدم بینی و بینکم الله کافی هست از نظر گوا بین من و بین شما و هو الغفور الرحیم ببین باوجودی که خدا من توبیخ میکند و کفرگویی اونها را نقل میکنه بعدم صفت غفور و رحیم نوع تشویق است یعنی ای بیشارها ها پیغمبر من را چنین می میزنید کتاب من را سحر میگویید باز هم در توبه برایتون بازه اگر بازم هم توبه کردید و هو الغفور الرحیم خداوند بخشاینده هست و مهربان است قل ما کنت بدع من الرسل و ما ادری ما يفعل بی ولا بكم این دلیل رسالت است. دلیل حقانیت رسول الله است. ای پیامبر به آنان بگو اعلام کن من پیامبر جدیدی نیستم که قبلا هیچ پیامبری نیامده باشد اولینش من باشم. نخیر قبل از من خیلی پیامبر آمده ای لست مبتدعا لامر يخالف بما یخالف امور هم به من پیامبر جدیدی که نهزت من پیام من و اون که من با خودم آوردم مخالف پیامبران دیگه باشن نه بلکه من با خودم آوردم اون چیزی را که اونها آوردند همه پیانبران همین دعوت را داشتند دعوت توحید و بعد اونها میگفتند خب این الان این جواب سوال مشرکان است مشرکان میگفتن که اگر واقعا شما پیغمبر خدا هستید شما بگید که آینده ما چطور میشه با ما خداوند چگونه رفتار میکند تجارت ما چی میشه و زراعت ما چی میشه فلان کار ما چی میشه یعنی از آینده به ما خبر بده پیشگویی بکن از غیب خبر بده خداوند تعالی به حبیبش میگه شما اعلام کن که من در خودم هم نمیدونم آینده هم چی میشه چی برست به شما و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم من نمیدانم با چی میشه با من ما یفعل بی تحتش بینیسی فی الدنیا چون در باره آخرت رسول الله میدوند ایمان یقین همه هست که آخرت پیامبر در بهترین نعمتهای خدا در بهشت خدا در بهترین وضعیت هست این شرائط دنیا در دنیا نمی دونم آینده چی میشه. وما ادری ما یفعل بی ولا بكم نمیدانم من چی می شود با من و با شما این اتبعو الا ما یوحا ایلی من يَرَيْنَنِي كُنَّ مگر آنچه ک وَحی می شود به سوی من و ما انا الا نذیر مبین و من یستم مگر ترساننده آشکاری ترساننده آشکاری هستم و بعد دلیل دیگر بر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دلائل زیادی داشتن یکی از دلائل اینه که این پیامبر مثل پیامبران گذاشته دعوتش مثل دعوت انبیا کتاب این پیامبر همخانی دارد با کتابهای انبیاء گذاشته همون مطالب را تایید می کند همون مطالب را تکمیل می کند تمام شرایطش با انبیاء گذاشته تطبیق داره یکی دیگر از دلائل صداقت رسول الله دلائل حقانیت نبووت ایشون اینه که از علمای گذشته کسانی که عالم بودند به تورات عالم بودند به انجیل آنها چیکار کردن آنها تایید کردند آنها تایید کردند چرا تایید کردند رسالت پیغمبر را نبوت پیغمبر را قل ارائیتم به من خبر بدهید بگو به من خبر بدهید ای اخبرونی به من بگوید انکان من عند الله اگر این قرآن از جانب خدا باشد و کفرتم به از سوی دیگه شما کفر بکنید این. و شهد شاهد من بنی اسرائیل و گواهی از بنی اسرائیل از علماء بنی اسرائیل هم گواهی بده که واغین کتاب خداست گواهی بده علامه به بمثل این قرآن یعنی به حقانیت و واقیتش فآمن اون گواه اون عالم اون شاهد خودش ایمام یاره وستکبرتم اما شما تکبر کنید باوجودی که می دونید گذشته دارن دارند ایمام بعض هم شما کفر بکنید آیا از شما گمراه تر هست جواب قل مقدره قل ارائیتم به من بگوید که اگر این چنین باشند من اضل منکم از شما گمراه تر کیه و شهد شاهد من بنی اسرائیل تفسیر این مستاق چیه مصداق این چیه برای حقانیت پیغمبر بسیاری می منظور نجاشی هست و علماء مسیحی که در کنار نجاشی بودند علماء مسیحی که خداوند تعالی از انها حریف می کند که انها وقتی که قرآن را شنیدند و اذا سمعو ما انزل الى الرسول ترا هم تفید من الدمع مما عرف من الحق وقتی که کلام خدا را شنیدند وقتی که پیام خدا را بالخصوص اون آیاتی که درباره حضرت جعفر تلاوت کردند درباره سید مریم بود علماء حبشه، اولمایی که اطراف نجاشی بودن احبار و رهبان عشقشون جاری شد چشمهاشون عشقبار شد چون حق را شناختند متوجه شده این کلام کلام پروردگار هست این شباهت دارد با انجیل عیسی صلی اللہ و وسلم بعضی گفتم مراد نجاشی هست چرا؟ چون این سوره سوره مکی هست عبدالله ابن سلام کجا ایمان آورد؟ در مدینه ایمان آورد بعدن. اما واقعیت اینه که علماء محققین گفتند این سوره مکی هست اما این آیه مدنی هست خیلی سوره ها هستند مکی اما یک آیه دو آیه سه آیه تو اون سوره ها هست که مدنی هستند درست این سوره سوره مکی هست اما این آیه در مدینه نازل شده زمانی نظر شد که عبدالله ابن سلام با مکتبش و مجموعه شاگردانش همه ایمان آوردند پس مراد تنها نجاشی نیست تنها احبار و رحبان حبشه نیستند بلکه همه علماء اهل کتاب عبدالله ابن سلام با شاگردان و اولمایی که در مدینه ایمان آوردند و همچنین احبار و رحبانی که در حبشه ایمان آوردند همه را شامل هست. بلخصوص شاهد و منبنی اسرائیل عبدالله ابن سلام است، پروردگار میگه که یکی از دلائل صداقت رسول الله این هست که یک عالمی اونم از بنی اسرائیل تورات را حافظ هست، عالم هست، وقتی که این کلام را میشنود وقتی که رسول الله را میبیند، علائم حقانیت را می بیند ایمان می آورد فآمن و او ایمان آورده اما شما جاهل ها هنوز تکبر بر تکبر مصر هستید بر کفر مصر هستید پس از شما گمراه تر کیه ان الله لا يَهْدِ القوم الظَّالِمِينَ خداوند هدایت نمی کند چین قوم ظالمی را قومی که این قدر داشته باشد این قدر ظالم باشد خداوند هدایت نصیبش نمیکنه توفیق هدایتش نمیده وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان ما سبقونا الى اینجا خداوند زجر و سرزنش برای کفر بین کفار بهانه دیگه نداشتن تکبر فقط اونها میگفتند که حتما در اسلام و در مسیر اسلام خیری نیست چرا چون که در هر خیر ما پیش قدمیم اونا دنیا را خیر می ثروت داشتن را خیر می دانستند می ببینید در بقیه میادین ما پیش قدمی ما جلوتر هستیم این غریب غربا فقرا پشت سر ما هستند لذا اگر در اسلام خیری بود حتما ما پیشی می گرفتیم ما ولی ایمان می آوردیم و قال الذین می گویند کسانی که کفر کردند للذین آمنو نسبت به مؤمنین لو کان خیرا ما سبقونا الی اگر خیر بود در توهید در قرآن آنها از ما سبقت نمی گرفتند از ما پیشی نمی گرفتند و اذ لم یحتدو بهی زمانی که هدایت نمی شون به این قرآن یعنی رای هدایت را در قرآن نمی بینند خدا کرو کرده اینا اتمی کنن چی میگوین فسیقولون هاذا اذک قدیم این دروغ قدیمی هست یعنی در گذشته هم از این دروغها گفته شده اینم از اونها العیاذ بالله نسبت به قرآن در حالی که الله میفرماید قبل از این کی بوده کدوم کتابها بودند آیا اونها هم دروغند قبل از این موسا بوده، ایسا بوده، اونا همه پیامبران الهی هستند، همه قبول داشتن، اونها پیامبران الهی هستند، ادا احترام میکردن نسبت به اونها مشرکین مکه هم موسا را قبول داشتن، ولی می گفتن خب اون پیامبر ما نیست، اون پیانبر بنی اسرائیل است. و من قبله کتاب موسا امام و رحمه قبل از این قرآن کتاب بود، در حالی که اون کتاب امام بود پیشوا بود رهنما بود و رحمه و بود این قرآن مثل اون و هذا کتاب مصدق اما این قرآن کتابی هست که تصدیق کننده و تایید کننده اون قرآن است اما فرقش این لسانا عربیا بزبان زبان عربی هست هدف فرستادن قرآن و نزول قرآن چیه؟ لی عنذرالذین از ولم او تاکه انذار بفرماید بیم بدهد بترساند به کسانی را که ظلم کردن یعنی شرک کردن و بشرالمحسین و مجذب رای احسان به من اخلاص. اونهای که با اخلاص ایمان آوردن برای اونها چی هست؟ بشارت هست. برای اونها مجذب و خوشخبری هست. بعد از این الله تعالی ترغیب به توبه میده یعنی ای مخلصین ای محسنین فقط ایمان کافی نیست استقامت ان الذين قالوا ربنا الله هم کسانی که گفتن رب ما الله ثم استقاموا ربما فقط الله است سپس استقامت کردن تادم موت بر توحید استقامت کردن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هیچ خوفی فیلم هم برای اونها نیست و در آینده هم اونها حزن و غمی ندارن لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون را چند بار تفسیر کردم اولائک اصحاب الجنه خالدین فیها این گروه بهشتی هستن همیشه در اون بهشت میمانند مانند جزا ام بما کانو یعملون این سبب ورود بهشت است سبب ظاهری هست این جزا این جزاء هست این پاداش است به سبب عمل کرده خوبشون اما مجازان حقیقتا خدا فضل فرموده و صین الانسان به والده احسان بعد از این خداوند در بشارت چند چیز دیگه بیان می فرماید که انسان معاملش را همه جا خوب بکن ببینید ما انسان ها و بندگان خدا چندین حقوق هست که اونها جلوی روی من باید اونها رو رعایت میکنیم بکنیم اول معاملهمون نسبت به خدا بعدن معاملهمون نسبت به پدر و مادر این دو بعدن معاملهمون نسبت به فرزندان خودمون سه و چهارم معامله من نسبت به نفس خودمون نسبت به خودمون باید چیکار بکنیم خداوند حقوق همه را بیان می فرماید حق خدا بر تو چی هست حق پدر و مادر حق خودت حق اولادت اما قبل از همه حق پدر و مادر را گفتی حق پدر و مادر که از حق خدا مقدم نیست اما پدر و مادر چون ضعیف هستند قابل ترحم هستند خداوند از پدر و مادر شروع می کند و باز از پدر و مادر مادر مسکین زیبتر است بلخصوص مادر را تأکید می کند ابتدا ما به انسان امر کردیم دستور دادیم و وسیعن الانسان وصیت قبلا ارز کردم به امر تأکیدی می گویم به اون دستوری که روش تأکید زیاد باشد و و الانسان ما بصورت مؤكد انسان را دستور دادیم نسبت به والدینش احسان بکنه نسبت به پدر و مادر احسان بکنه لطف داشته باشد خدمتشون بکند بالخصوص مادر حملته امه کرهن و وضعته کرهن حمل کرده مادر او را با سختی و وضع حمل کرده هم با سختی سختی که مادر برداشت کرده پدر نکرده نه ماهی که در شکم مادر بوده چقدر سخت کشی، سختی کشیده بعد وضع حمل که با مرگ وقتی که مادر بچه را به دنیا می آورد با مرگ خیلی فاصلش کمه خیلی مادرها هستند در همین لحظات دنیا را مرگ میکنند از بس که سختی داره با مرگ زیاد فاصله ای نداره پس الله تعالی می فرماید این مادر که با سختی او را به دنیا حمل کرده و با سختی وازی حمل کرده و بعد بعد از وازی حمل هم تمام بار و سنگینی در تفولیت هم بر مادر است مادر بیچاره شبیداری میکشد تر خشکش می, می کند تمام زحمتش را میکشد؟ وحمله و فصالوه و شهرا وحمل آن و از شیر جدا کردنش سیما هست. چطور حمل آن و شیر جدا کردن سیما هست؟ ببینید اینجا جمهور معتقدند؟ که مدت شیردادن بچه دو سال است مدت شیردادن بچه دو سال است و چون و الوالدات و یردعن اولادهن حولین کاملین بیش از دو سال نباد بچه را شیرداد خوب دو سال مال شیردادنش است چقدر میمانه؟ شش ماه میمانه شش ماه میگویم مدت, مدت حمل بچه در شکم است، مگر شیش ماه است، بله اقل شش ماه است. اکثرش دو سال است. متوسطش و حد معتادش که عادت همه زن هاست نه ماه است چیزی بیشتر کمتر پس خدای از زوجل اینجا مدت اکثر شیر را بیان فرموده و مدت اقل حمل را مدت اکثر شیر 24 ماه و مدت اقل حمل 6 ماه جمعا میشه 30 ماه لازم فرماید و حمله حمل او آن در شکم و فصاله و از شیر کندن و جدا کردن 30 شهرن 30 ماه است اما در فقه شما خوندید که نظر امام ابو حنیفه رحمه الله اینه که حد اکثر مدت رضاعت دو نیم سال است حد اکثر مدت رضاعت دو نیم سال است امام ظفر میفرماید سه سال است امام مالک میفرماید دو سال است اما یکی دو ماه احتیاتا روش اضافه بکنید دو سال و اندی چرا چون که تا وقتی بچه را عادت بده از پستان جداش بکنه از سینش جداش بکنه بالاخره چند بار این بچه شاید شیر بخوره اگر ما بگیم شیر براش حرام در حالا جواک میشه. چون بعد از این مدت دیگه برای بچه شیر درست نیست و در همین مدت دو سال بنابر قول جمهور و دو نیم سال هم رضاعت ثابت میشه یعنی اگر بچه ای اینقدر بود و از زنی شیر خورد بچه شاب میشه اما اگر بزرگ بود مثلا چهار ساله بود و شیر خورد 5 ساله بود و شیر خورد خب این بچهش ثابت نمیشه. باید در همون مدت رضاعت باشه پس مدت رضاعت از نظر جمهور دو ساله از نظر امام مالک دو سال و اندی هست از نظر امام ابو حنیفه نیم سال است، از نظر امام زفر سه سال است. خب اینجا الان امام ابو حنیفه چطور تطبیق میده که دو نیم سال گفت. امام اللامن نصفی که تفسیر مدارک را نوشته ایشون میگه این آیه بیشتر طبقه مسئله کی ابو حنیفه است چطور میفرماید که بحث از مراد از حمل حمل در شکم نیست حمل بر دوش است حمل در بغل است چون که بحث وسیه حمل تمام شد شما خواندید حملت و امه و کرهن و وضعته کرها مادرش با سختی او را حمل کرده در شکم و با سختی وضع حمل کرده پس اینجا حمل شکم و وضع حمل تمام شد از این به بعد حمل با چیه؟ بلعکف یعنی به آغوش گرفتن و حمله و فصاله سلاسون شهرن یعنی به بغل گرفتن حمل با دست ها و از شیر جدا کردن سیماهی دیگه طول می سیما بچه در بغل مادر است و شیر می خورد پس برای حمل هم سیما برای جدا کردن از شیر هم سیما ما المرادو بهی حملو بالاکوف تفسیر مداری گفته والله عالم خب الان ببین گفتیم این جزء اون بشارت است فرزند صالح وقتی که پدر و مادر ادارت خداوند میفرمد ما او را به پدر و مادرش وسییت کردیم که نسبت به آنها احسان بکند این فرزن چکار می کند. مادر پدر او را تربیت می کند او را نگهداری می کند این بچه بزرگ میشه. حتی اذا بلغ شده، حتی وقتی که این بچه به سن رشد و به سین قوت می رسد. ببلوغ یا بسن قوت وبلغ 40 سنه ومیرس چهل سال الان ان بچه ببین چه دعای میکنن ان بچه صالحه این جو همون بشارت است قال رب اوزعني ان اشكر نعمتک التي انعمت علیه این دعا یکی از دعاهای جامع هست که خداوند خودش به ما آموزش میده این دعا را همیشه بکنید این دعا را هم برای خودتون کردید هم برای پدر و مادرتون هم برای نسل و اولادتون رب اوزعنی بار الها مرا توفیق بده اوزعنی یعنی وفقنی در قسمت من قرار بده در تقدیر من قرار بده که چیکار بکنم أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إن شكر غزار باشم سپاس غزار باشم نعمت ترى أن نعمتك تبر من انعام فرمودي وعلى والدي وأن نعمتك بر پدر و مادر انعام فرمودي خدايا بمن توفيق بذي من شاكر أن نعمت باشم وأن أعمل صالحا ترضى وخدايا بمن توفيق بذك من عمل صالحي أنجام بدم كتو راضي باشي ارز کردم در پدر و مادر، در نفس خودت، در اولاد خودت. این حرص را آورده. خدای توفیق بده نسبت پدر و مادر هم شاکر باشم بر اونها لطف کردی. بر من لطف کردی هم ان اعمال صالحا و اصلح لی فی اولاد من را اصلاح بگردن. در, در اونها اصلاح ایجاد بفرما. اینی توب تو الیک و اینی من المسلمین اینجا حق خداست نسبت به خدا بار اله من رجوع کردم فقط بسوی تو توبه به بسوی تو و اینی من المسلمین من از بندگان منقاد و فرمانبر هستم هم اعتقادا و هم عملا ببینید به این خاطر ارز میکنم این دعا را همیشه بکنید که پروردگار میگه بنده وقتی که اینطور دعا میکند ما قبول میکنیم اولئک الذین نتقبل عنهم اینها کسانی هستن وقتی که اینگونه دعا میکنن نسبت به پدر و مادر خودشون هم لطف دارند کسانی هستن که ما قبول میکنیم از آنها احسن معامله و اعمال خوبشون را بهترین اعمالشون را و اگر اعمال بدی داشتن و نتجاوز عن سیئاتهم سیئات و اعمال بدشون در گذر میشیم و نادیده می گیریم فی اصحاب الجنه انها در اصحاب جنت هستن یعنی انها همرا با بهشتی ها در بهشتن وعد الصدق الَّذی کانو يوعدون این وعد الصدق از نظر ترکیب مفعول له برای نتقبلو است. ما قبول میکنیم دعا را عمال نیکش را چرا؟ بخاطر اون وعده صادقانه‌ای که اینها وعده شدن در دنیا خداوند در دنیا وعده کرده ای بنده مومن من اگر با خدا با من شریک نساختی و مرا با اخلاص خاندی من قبول میکنم پس بخاطر اون وعده صادقانه که وعده شدن قبول میشه این فرزند صالح است این فرزند مؤمن است اما فرزند نا هم داریم اون را خدای تعالی هم ذکر می فرماید والذي قال لوالديه اف لكما اون فرزندی که به پدر و مادر میگه اف بر شما اف کلمه‌ای تحسرت حسرت و کلمه‌ای که حکایت از خستگی دارد حکایت از اینکه ان انسان نسبت به پدر و مادرش کم لطفه است توجهی ندارد اف میگوید به اونها اف علی سبکترین کلمه است اگر از این سبکتر بود خدا اون را ذکر میکرد اتعیدان آیا شما مرا میترسانید ان اخرجه این که از قبر بلند میشم شما به من میگویید که یک روزی از قبر انسان بلند میشه جواب میده سوال و جواب میشه حشر میشه در حالی که اینا همه داستانند قبول نداره منکر قیامت این پسر و قد خلت القرون من قبلی قبل از من قرونی گذشته دورانی گذشته هزاران سال گذشته اون انسان ها چرا زنده نشدند؟ این طور کفر می کند با پدر و مادر سخن می گوید پدر و مادر چی می گویند؟ و هما یستغیثان الله اونها از خدا کمک میخواهند. توفیق ایمان برش می خواهند و به فرزند می وای ویلک آمن حلاکت برای تو ایمان بیار به خدا نکن این اینو نگو که کفر است متاسفانه بسیاری از جوانها هستند امروزه هم که اعتقادشون و باورشون نسبت به خدا و نسبت به قبر و عذاب قبر و قیامت ضعیفه گاهی پدران و مادران، پدران گاهی میپرسند که ما این نوع بچار رو چکار بکنیم، از خانه بیرون بکنیم، درگیر بشیم، وقتی که پدر بهش میگه، بترس از خدا فردا قیامتی میگه، این حرفا قدیمی شده. این حرفای قدیمی, حرفا قدیمی شما این آرانیز، نه کی گفته چنین چیزی، یعنی الانن کفر بیکنیم. اینم هم همینه که ویلک آمین، پدر میگه مادر میگه حلاکت برای تو ایمان بیار ان وعد الله حق وعد خدا حق است خدا گفته پسر در جواب چی میگه فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین این نیست مگر جز افسانهای اولین است قدیم افسانه میگفتن داستان میگفتن از این از همون داستان هاست الله تعالی میفرماید این انسانی که بعد از عمری که غوی شده، جوان شده، تنومند شده، سرمایدار شده، الان پدر و مادرش را اینطور جواب میده، نسبت به ربش اینطور پشت میده، پشت می کند و خدا را انکار می کند، قیامتش را انکار می کند، عذاب قبرش را انکار می کند، خدا می فرمان ما به حسابش می رسیم. اولئیک الذین حق علیهم القول این افراد کسانی هستن که ثابت شده بر آنان قول. مراد اس قول عذاب. یعنی عذاب برایشون ثبت شده. فی اممین قد خلط ای معا اممین یا یدخلون فی همراه با اون گروه هایی که قبل از اینها گذاشتن من الجن والانس. از جنات و انسان ها اون جنات و هایی که در گذشته گذاشتن و کفر و انکار کردن این همراه با اونها خواهد بود. انهم كانوا خاسرين الا ان ها در اینها خاسر بودند یعنی در خساره واقع شدند عمرشون را ضایع کردند تلف کردند چرا به دلیل به دلیل اینکه اون فطرتی که خدا بهشون داده که ایمان به خداست اون را از دست دادند پس اینها در جهنم با اونها قرار میگیرند گیرند اما ولكل درجات مما عملو هر یکی از اینها اونجا درجاتی دارد از آنچه که عمل کردند یعنی بر اساس اعمال درجاتی عمل کنندگان هم در جهنم دارند اونایی که عمل جهنمی کردند هم در بهشت دارند و اعمال اعمالهم و هم لا يظلمون بصورت کمال خدا می دهد به آنان اعمالشان را یعنی تا اینکه که خداوند کامل بدهد اعمالشان را در جهنم و هم لا يزلمون بر اونها ظلم نمیشه بر اساس اعمال با اونها برخورد میشه حال خداوند اینجا فرمود که در جهنم عذاب داده میشوند تعین عذاب به اینها چه گفته میشه و یوم یعرضو الذین كفرو علا النار روزی که عرضه میشوند کسانی که کفر کردن بر آتش کفر چونکه معتقدند که تمام لذات و تمام خوشی همین دنیا دنیاست بعد از این مرگ ابدی لذت در دنیا از هیچ نوع لذتی دریغ نمی کنند کفار را میشنویم گاهی که اونها شب و روز دنبال هستند که بهترین لذات چی هستند لذت در خوراک لذت در بلا تشبیه شهوترانی لذت در تفریحات لذت در مادیات سعی میکنند شب و روز که خوش بگذرانند چون معتقدند اول و آخر همینه خدا اونجا میگه شما هرچی خوشی بود در دنیا سپری کردی گذاران دید متاسفانه بعضی از ابنای مسلمین فرزندان مسلمین هم میبینند گاهی کفر را متعصر میشه وقتی که بهشون گفته میشه به طرف خدا بیا این اعمال را انجام بده از خدا بترس میگه دنیا دو روزه دنیا دو روزه یعنی چه؟ یعنی تو این در روز باید هیچ آرزوی تو دلمو نذاریم همه را پیاده بکنیم در حالی که قرآن میگه چون دنیا دو در روزه بی خود لذات آخرت را که ابدی و سرمدی هستن بخاطر این لذات دروز فدا نکن ببین اینجا اینا فدا کردن خدا چگونه خطابشون میگونن و یوم یعرضو الذین کفرو علی النار روزی که ارزی میشوند کسانی که کفر کردن بر آتش اذهبتم طیباتكم فی حیاتكم الدنیا شما از بین بردید خوشیهای هایتون را در زندگی دنیا واستمتعتم بها و بهره بردید از همون زندگی دنیا هر چی خوشی بود عیش بود نوش بود در دنیا انجام دادی فلی یوم تجزون عذاب الهون امروز شما پاداش دادی می شوید جزا دادی می شوید عذاب ذلت بار بما کنتم تستكبرون في الأرض بغیر الحق به سبب اینکه شما در زمین تکبر میکردید بناحق یعنی حق تکبر نداشتید و به ما کنتم تفسقون و به سبب اینکه فسق میکردید فسق یعنی خروج از طاعت الله استعات خدا خارج شدید خدا میگفت توحید شما نکردید خدا گفت نماز شما نکردید خدا گفت فلان طاعت شما نکردید بس فسق همینه فسق کلی مشکک و عام هست هم شامل شرک میشه هم شامل کوف میشه هم شامل بقیه گناهان میشه. اینجا به همون معنی عام هست وذکر اخا عاد ببینید خدای تعالی در اینجا ذکر فرمودن کسانی که در دنیا تمرد کردند و حرف گوش نکردند برای اونها چه عذابی هست عذاب در آخرت اما از اینجا این دلیل نقلی تفصیلی از قوم احقاف هست یا از قوم عاد هست این ها را خدا در دنیا عذاب داد پس معنای این دلیل چیه؟ هدف این آیات اینه خداوند تعالی فقط در آخرت عذاب نمیده گاهی در همین دنیا هم عذاب میده دیدیم شنیدیم خیلی انسانهای متمرد سرکش باقی تاغی تغیانگر ولی خدا تعالی زود معاخزه ایشون و زود گرفتار شدند بنابراین این دلیل دلیل را که خدا ذکر می کند معنیش اینه که فکر نکنید فقط در آخرت هست عذاب چون اونا به آخرت ایمان نداشتن میگفتم باشه عذاب در همین دنیا هم عذاب هست وذکر اخا عاد یاد کن برادر عاد را برادر آد کیه حضرت هود یعنی برادر قوم آد از نظر نسبی و فامیلی با اونها برادر بود اذ انذر قومه بالاحقاف وقتی که قومش را بر اون تپی ریگ ترساند اونجایی که زندگی می کردند در اون ریگستان قومش را ترسند از عذاب خدا گفت ای قوم من رب را نافرمانی نکنید وقد قد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ان حضرت هود اولین هم نبود آخرین هم نبود خداوند میفرماید انبیاء دیگر نظر نذر جمع نظیر هست یعنی انبیاء که ترسوندند بیم دادند قومشون را گذشتند من بین ری و من خلفی قبل از هود هم بودند مثل حضرت نوح علیه السلام بعد از هود هم دیگران آمدند مثل قومه حضرت صالح خب قوم را ترساند چی گفت بزرگترین و مهمترین رسالت این پیامبر چی بود این پیامبر و همه پیامبران الله تعبدوا الا الله پرستش نکنید عبادت نکنید هیچ کسی را بجز الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم در غیر این صورت من میترسم بر شما از عذاب روز بسیار بزرگ و هولناک اگر غیر خدا را پرستش کردید عذاب میآید اما قوم بیخرد و نه اهل خورده میگیرد و ایراط میگیرد به پیغمبر خدا چه میگویند قالوا اجئتنا لتفكن ا ایود آیا آمدی پیش ما تا که ما را برگردانی از خدایان ما عن الهاتنا از الهای ما یعنی از این دینی که ما داریم میخوای برگردانی بی دین بشیم دین خودمون رو ترک کنیم نه ما که این دین را ترک نمی کنیم ما این خدایان را پرستش می کنیم تو که ما را می ترسونی از عذاب تو عذابت را بیار فعتنا بما تعیدنا این کنت من الصادقین بیاور آنچه که وعده کردی با ما آنچه که ما را ترسوندی این کنت من الصادقین اگر راست میگی بیار عذابش را بیار اما حضرت حود میگه عذاب به دست من نیست و زمان عذاب را هم نمی دونم پیامبران پیامبر خدا هستم ولی خدا نیستند فرق خدا و بندگان خدا را ما باید بدونیم هیچ وقت از یک پیغمبر از یکی از اولیا از یکی از ائمه پیری هست خلیفه هست انتظار داشته نباشیم که کار خدایی انجام بده عرض کردم در مقدمه بعضی هم نقل کردن از شیخ سلاه الدین در فلان کتاب که گفته خدا به من اینقدر قدرت داره که میتونم زمین و آسمان را فرو بریزم و درهم برهم کنم. این کار کار خداست. کار انسان نیست. ببین پیغمبر میگه من عذاب به جای خود علم عذاب را هم ندارم. قاله انما العلم عند الله ای قوم شما از من چه انتظاری دارید؟ من عذاب بیارم نخیر. من در جایگاه این نیستم که شما را عذاب بدم عذاب رب من میده من فقط میترسونم من فقط مبلغ هستم من فقط رسول خدا هستم قال انما العلم عند الله جزی نیست که علم عذاب و علم تعین عذاب پیش خداست و ابلغكم ما ارسلت به من به شما میرسانم ای قوم اون چی که من فرستاده شدم به آن ولی میبینم شما خیلی قوم جاهلی هستید نفهم هستید از عذاب شما را میترسونام شما میگه بیار عذاب ولیکن اراکم قاوم تجعلون من شما را میبینم شما اما شما را میبینم قوم جاهلی هستید یکی از علائم جهل همینه که شما از من پیغمبر عذاب میخوایید مگر پیغمبر میتونه عذاب بده پیغمبر نمیتونه خدا عذاب میده بلاخره اینها قبول نکردن تا اینکه روز موعود آمد روز عذاب آمد اما قبل از عذاب خداوند به قوم گوشمالی داد عذابهای کوچی کوچی که دیگری آورد تا شاید متنبه بشند متذکر بشند نه تنها برای این قوم برای هر قومی خداوند قبل از اون مصیبت بزرگ عذاب های کوچک کوچک میاره خاندیم برای قوم فرعون فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل این انواع عذاب ها آورد اذیت شدن تا برگردند بفهمند که ما داریم موسی اذیت میکنیم اینها چون که عقل و خرد نداشتن حالیشون نشد صبح خاندیم در سوره دخان که قبل ذین که برای اونها مشکل و مصیبت بزرگ پیش بیاید خداوند به وسیله قحط مشرکین را عذاب داد دخان همون قحط بود بلاخره هر قومی را خدا من اول گوشمالی میده. اینها را هم ابتدائن خدا تعالی گوشمالی های داد اون گوشمالیشون چی بود چند سال باران نیامد باران نیامد زمینهاشون خشک شد ولی این متوجه نبودند که ما داریم پیغمبر خدا را نافرمانی میکنیم به همین خاطر رحمت خدا از ما قد شده تا اینکه روز عذاب رسید روز عذاب که رسید عذاب به شکل ابر سیاه رنگی آمد ابر انبوه سیاه روبروی وادیها و رودخانها و شعاب انها قرار گرفت همه دیدن اون عبر را خوشحال شدند قوم یونوس شما خاندید که قوم یونوس وقتی عبر را دید ترسی توبه کرد اینها نه اینها که عبر را دیدن چون ایمان مقدرشون نبود اینها عبر را دیدن گفتن که این عبری هست که آمده برای ما باران بده چند مدتی باران نیامده توبه نکردن فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم وقت که اون عذاب را دیدن به عنوان عارض و ابر روبروی وادیهایشون قالوا هذا عارض ممطرنا به هم دیگه خوشخبری دادن گفتن این ابری هست که باران دهنده ما هست الله به زبان حال فرمود بل هو مستعجل استعجلتم به ای قومن ای قام بی خرد این آن چیزی هست که شما عجله کردی به آن ریحون فیها عذاب عذابون علیم این تشریح عذاب این در واقع بادی هست طوفانی هست که در آن عذاب دردناک بود چنان طوفانی که تو دم رو کل شیعیم به امر رب ها نابود کرد هر چیز را به امر پروردگارش همه چیز نابود شد فَأَصْبَحُوا لَا يُرَا إِلَّا مَسْحَاكِنُهُمْ گشتند اونها اصبحو به معنی ساروح هست به معنی صبح نیست گشتند که نمی مگر خونه هاشون را یعنی چنان طوفان شدید شد که فقط اتاقهاشون را می دیدن اونها خونه های بلندی داشتند ارز کردم اصبحو به معنی صبح نیست چونکه عذاب صبح نیامد عذابی که برای اونها آمد خداوند می و اما عاد فا اهلکو بریح سرسر عاتیه قوم عاد با بعد بسیار تند و سرکش و ارز کنم بعدی که یخبندان بود هلاک شدن چه وقتی سخرها علیهم سبع علیال و ثمانه ایام حسومه خداوند این باد را بر اونها وزید هفت شب و هشت روز، سبع لیال و ثمانیت ایام، حسوم لذا یک صبح نبود، صبح و شب بود، صبح و شام بود، بعد میوزید، چنام میوزید که انها را از بین برد، تمام را نابود کرد. خدای تعالی میفرماید، لا يراء الا همه انها افتادند، بر زمین نقص بر زمین شدند، کشته شدند تو اون بعد که نجزل نجذل قوم مجرمین این بیان سنت الله هست که ما این گونه دهیم ما این گونه به کیفر اعمال میرسانیم قوم مجرم را، قوم جرایم پیشرا، اینها چور میکردند، اینها گناه و ماسیت میکردند، شرک میکردند. حال وقتی که این داستان را خداوند تعالی تعریف کردند روی سخن به طرف اهل مکه ای قریش ای اهل مکه ای ابو جهل ابو شما مست قدرت خودتون هستید شما میگیم ما اسلحه داریم ما پول داریم ما تجارت شام و یمن داریم ما به قوم آد قدرت داده بودیم که به شما ندادیم اونا از شما قوی تر بودند نیرومنتر بودند خداوند در بار قوم آد میگه مثل اونها در تمام شهرها آفریده نشده بود از همه انسانهای روز زمین اونا قوی تر بودند لذا اللهم فرماید ولقد مكنناهم فيما امّكناكم ام همانا ما به اونها تمکین دادیم یعنی قدرت دادیم فيما آنچه که امّكناكم ام این این این نافیه است ندادیم بشما اون قدرت را در آن و جعلنا لهم سمع و ابصار اونها کرکور نبودند اونها دیوانه نبودند بلکه قرار دادیم برای اونها گوش قرار دادیم چشم قرار دادیم دل قرار دادیم یعنی اقل و خرد همه چیز داشتند مال داشتند امکانات داشتند فما اغنا عنهم سمعهم اما این گوش هیچ چیزی را دف نکرد از اونها ولا ابصارهم و چشمان اونها ولا افادتهم و نه دل اونها من شيء هیچ چیزی از ازار به خدا را اذ کانو یجحدون بی اللہ زیرا انها بودند انکار میکردند آیات اللہ را و حاق بهم ما کانو بی هی و فرود آمد نزول کرد به انها آنچکیو را مسخر می کردند عذابی که مسخره می کردن بلاخر آمد پس ببینید زرنگی انسان را نجات نمی دے اقل و گوش انسان را نجات نمیده هوش انسان را نجات نمیده ایمان انسان را نجات میده اگر کسی بگه من زنگم من سرمایه دارم نه ایمان ت خدا ترسی لذا الله می ای اهل مکه اونا از شما قوی تر بودند اونا از معام قوی تر بودند از همه انسان ها قوی تر بودند ولی خدا حالاقشون کرد والا ذا قوم عاد الله به اهل مكه میگه ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى ای مشرکین ای قریشی همانا ما هلاك کردیم ما حول شما اطراف شما قریه های زیادی را اکثر این قریه ها که خداوند ذکرشون را در قرآن آورده اینا همه اطراف مکه بودند ناین کز خیلی نزدیک مثلا از مکه به شام رفتی از مکه به یمن می‌رفتی همه در همین مسیر بودند قاملوت هم در همین مسیر بود سر راه اردن بود قوم عاد هم در یمن بود قوم ثمود ها کذا همه همین نزدیکا بودند لذا ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى ما هلاک کردیم اطراف شما خیلی قریها را وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون آيات رأترافي انها قرداني ديم يعني آيات متعددي ما براي انها ذكر کرديم شايد برقردن اس كفرشان اس شركشان همان قوليك براي شما مشرکین آیات متعددی خدا کم آیات نگفته آیاتی در باره قدرت خودش آیاتی که مثال هست برای ضعف خدایان آلهی باطله مثال های مختلف قیاس های مختلف انواع آیات را گردانیدیم دیم لعلهم یرجعون تا که بر اما اونها بر نگشتند حال خدا حلاکشون کرد الان مدعای سوره این است اگر عبادت غیر الله میتونه برای انسان کاری بکنه نفعی به انسان میرسونه چرا وقتی که عذاب برای همه این اقوام آمد خدایانشون نتونسن اونها رو نجات بدند فلولا نصرهم چرا یاری نکردند آن مشرکین را کی یاری نکرد الّذین اتخذوا من دون الله آن معبودانی که آنها را گرفتند اتخذوا اتخذوهم آنها را گرفتند بغیر از الله به منظور تقرب که اینها گفتن ما را به خدا نزدیک می کنند اونها را چی گرفته الهتا اله گرفتند اینجا یک مسئله بفهمید امروز خیلی از اهل خرافات میگه ما از این بزرگان کمک می‌خوایم تا وسیله ما به خدا باشه ما را به خدا نزدیک کنند بعضی وقتا شیطان فریب میده میگه کجا خدا و کجا این دهن پر از گناه ما این قلب سیاه ما ما با خدا خیلی فاصله داریم نمیتونیم مستقیم از خدا بخواهیم لذا اینها در وسط ما واسطه هستند اینها را وقتی که صدا بزنیم اینها را زاری بکنیم اینها ما را به خدا نزدیک میکنند ببینید اونها هم همینه میگفتند اونها خداوند می چرا یاری نکرد آنان را؟ آن معبودانی که اون معبودان را گرفتن غیر از خدا به منظور تقرب قربانان به منظور این که اینها را به خدا نزدیک کنند اونا را چی گرفته آلحه بل ضلو عنهم بلکه گم شدن ناپدید شدن عنهم یعنی عن نصرتهم اون معبودان از نصرت عابدان خودشون گم شدن به وقت عذاب خبری نبود و ذالک افکهم و ما خداوند میفرماید این دروغشون بود میگفت مارا کمک میکنند برای اونها گزفن میکشدم برای اونها شتور میکشتن میگفتند در سختیهای دنیا ما مار پیش خدا میکنند نمیگذارم خدا به ما ضرر برساند خب چرا نتونستن جلوی آب خدا رو بگیرن و ذالک این دروغ آنها بود و معا ما کانوی افتراون واب مانه ماهس مع ما کانی افتراون هم رابا بقی افتراها هم رابا بقی دروغها یکی از دروغهاشون بود و اذ صرفنا ایلیک نفرم من الجن این دلیل نقلیه دیگری هست از جنات این دلیل را تفصیلش را ان شما در سوره جن میخانید اینجا هم آمده که گروهی از جنات که ابلیس به آنها ماموریت داده بود تا بینند و بدانند که چه تحولی در دنیا آمده که راههای آسمانها مسدود شده در مقدمه و مساله الهام خدمت شما عرض کردم که قبلا جنات برای کاهنها، ها برای کسانی که جنات را مسخر کرده بودن می رفتند از آسمان ها خبر می آوردند. ورودی های بود راه بود می رفتند آسمان جایی که ملکه فرشتگان با هم شور و مشورت داشتن تقسیم کار می به هم دیگه وظائف را محول می اونجا استراقی سن میکردن، دزدکی گوش میکردن، خبری چیزی گیرشون میامد، میامدن به این کاهن میدادن. بعد این کاهن مردم را گمراه میکرد، ادعای علم غیب میکرد. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شدند، همه راها بسته شد، راها مسدود شد، جنات دیگه راه نداشتند. خب شیطان گفت که حتما در دنیا یک تحولی آمده. بگردید ببینید چه خبره گروهی از جنات بره سرزمین حجاز آمدند این جنات از قوم نصیبه این بودند در حدیث آمده یا هفت نفر بودند یا نه نفر این زمانی بود که رسول الله صلی علیه و وسلم داشت میرفت با جمعی از اصحاب به طرف سوق عکاز از مکه میرفت سوق عکاز یک بازاری بود که در موسمهای مختلفی اونجا مردم کالاهای خودشون را می کردن مثل نمایشگاه کالا امروز که بعضی جاهای خاص در فصل خاصی کاسبان میارند کالا می کنند در سال چند بار در سوق عکاس جمع می شدند همه مردم از اطراف و اکراف می آمدند جنس می خریدند یکی از شام کالای آورده یکی از یمن آورده یکی از جای دیگه آورده لذا رسول الله وقتی که دید همه مردم عرب اونجا جمع میشوند چند روزی بازار گرم خرید و فروش است به اصحاب و یاران فرمود از این فرصت استفاده میکنیم میریم مردم را دعوت میکنیم لذا نیمه شب از, مدینه از مکه حرکت کردند یک وادی بود به نام وادی نخله در اون وادی نخل وقت نماز صبح رسید، رسول اکرم صلی علیه و سلم نماز صبح را اقامه کردند آن حضرت امام بودن، نماز می خاندن، آیات قرآن مجید را خواندند، این جنات خداونده اززوجل روخش ان را به این سمت قرار داد، اینجا آمدن دیدند که قرآن خونده میشه. این جنات از این آیات معلوم میشه که قبلا از پیروان موسی بودند چون با موسی و با طورات آشنایی داشتند اینجا وقتی که آمدند دیدن عجب کلامی است چه کلام زیبای چقدر گیرایی دارد قل اوحی ایلی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا گفتم ما قرآن عجیب شنیدی قد زیبا اینقدر جالب اینقدر خوب راهنمایی میکنه یهدی الى رشد براه ایمان براه هدایت راهنمایی میکنه مارا فآمننا به ما ایمان آوردیم به قوم خودشون گفتن به شما میگیم ولن که براب بنا احدا مازیم بود کسی را با خدا شریک نمیگیری یک بار قرآن را ایمان آوردن عقیدهشون را عوض اصلا با رسول الله ملاقات نکردند، فقط قرآن شنیدند، ایمان آوردند، رفتند، بعد دوباره آمدند، در احادیث داریم لیلت الجن سه بار اتفاق افتاد، بعضی رویت هاست شیش بار، سه بار مکه، سه بار مدینه، لذا بعدا آمدند رسول اللہ برای اونها بصورت خصوصی تبلیغ کرد، ولی این بار قرآن را شنیدند، على ای حال خداوند دلیل نقلی از جنات بیان میکنه. ای مشرکین مکه این قرآن در میان شما نازل شده جن گوش میکنه و ایمان می آورد تو چرا ایمان نمیاری تو چرا قرآن در وجود تو اثری نمیگذارد و اذ صرفنا الیک نفرم من الجن زمانی که ما منصرف کردیم روخ رخ اونها را گرداندیم به سوی تو روح کرا نفرم من الجنی گروهی از جنات را که یستمیعون القرآن استماع کردن قرآن را فلما حضروه قالو انسی تو وقتی که حاضر شدن انجائی که رسول الله قرآن می خاند جنات به هم دیگه گفتن قالو انستو شما ساکت بشید، ببینید چی میخاند، فلما قضی وقتی که تمام شد تلاوت رسول الله، منذرين انها برگشتن پیش قوم خودشان در حالی که اونها را انزار کردن، انها را بیم دادن، می چی گفتن؟ قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى اي قوم ما همانا ما شنيديم كتابي كه نازل شده بعد از موسى معلوم میشه اینها از دین و از امت موسى بودند ما شنيديم امشب و امروز كتابي كه نازل شده بعد از موسى مصدقا لما بین یدی کتابی که تصدیق می کند تایید می کند کتاب های را آنچه که قبل این هست یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم چنان کتابی هست که راه نمائی می کند حق و همچنین سوی مذهب حق و همچنین براه راست الی طریق مستقیم سرعت مستقیم راهنمایی میکند چنین کتاب زیبایی هست لذا اي قوم من از شما، ما از شما میخواهیم چمی خاید؟ یا قومنا اجیبو داعی الله ای قوم ما شما اجابت کنید از این دعوت گر سوی خدا این دعی خدا و آمنو به و ایمان بیاورید به این کتاب یغفر من ذنوبكم خدا می بخشد گناهان شمارا و من عذاب الیم و پناه می ده شمارا از عذاب از دردناک می‌خواهید از اون عذاب دردناک نجات بیابید به بی این کتاب ایمان بیاورید و شاگرد این کتاب بشوید اما و من لا یجب داعی الله اون ترغیب بود این ترهیب هر کسی که اجابت نکند داعی الهی را این دعوتگر به سوی خدا را اون وقت خدا عذابش میده فلیس بمعجز فی الارض او آجز کننده در زمین نیست یعنی نمیتونه خدا را آجز بکنه ببینید یک مجرم میتونه یک پادشاه را آجز بکنه پادشاهی میخاد را که تحت تعقیب قرار داده میخاد دستگیر بکنه یا تو همین کشور همون پادشاه میره جای مخفی میشه پادشاه اصلا با خبر نیست خیلی افراد هستن تحت تعقیبند 10 سال 20 سال تحت تعقیب رفتن در قلب کشور در مرکز کشور زندگی میکنن در شهرستان ها زندگی میکنند کسی نمیتونه دستگیرشون بکنه پس بعضی وقتا مجرم اینطور هم آجز یا می... اینکه یعنی از اون ملکی حکومتی که اون پادشاه حکومت میکنه از اونجا خارج میشه میره در یک کشوری دیگه بعض هم دست پادشاه بیش نمیرسه اما خداوند چنین نیست کسی نمیتونه خدا را آجز کنه فلیسه بمعجزیم فی الارد نمیتون از پیش خدا مخفی بشه نه جای دیگه هست که از ملک خدا خارج بشه جای دیگه نیست همه ملک ملک خدا هست ولیس له من دونه اولیاء و نیست برای آنان به غیر از خداوند هیچ نو حامیانی حامی هم نداره که او را پناه بده لذا این کسی که دعوتگر خدا را اجابت نمیکند اولئک فی ضلال مبین این در گمراهی آشکار است این نتیجه ادمه اجابت است اولا می يرو ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بعد از این دلیل نقلی که بر اثبات توحید بود خداوند دلیله عقلی بر اثبات قیامت میارد ببینید هم توحید ثابت بشه هم قیامت ثابت بشه اون وقت ایمان کامل میشه ایمان در صورت کامل میشه هم به خدا ایمان بیاریم هم به قیامت خداوند هم دلیل برای اثبات توحید خودش میارد هم به دلیل برای اثبات قیامت ما گفتیم قبلاً که سنو دلیل برای اثبات قیامت است یکی از اون دلائل استدلال به مخلوقات عظام مخلوقات بزرگ به این صورت که خداوند می‌فرماید من وقتی که مخلوق بزرگتر از شما انسان‌ها را می‌تونم درست کنم خلق کنم پس خلق شما کاری ندارد پیدایش شما کاری ندارد اولا رو ايا نمي که ان الله الذي خلق السماوات والارض هم الله ان ذاتي كه آسمان ها و زمین را آسمان و زمین را ببین و انسان را مقایسه با آسمان و زمین ولم يعي بخلقهن و خداما خسته نشوده به خلق آسمان و زمین بس وقتی که این خدایی که آسمانها و زمین را خلق می کند مگه شما نمی بینید که بقادرین این خدا قادر است على ان یحیی الموتها مردها را در روز قیامت زنده کند آیا قادر نیست؟ بلا چرا نه انهو على کلش این قدیر این ذات بر هر چیزی قادر است لذا ای انسان ها ذات قادر دوباره شماره خلق می کند حال تخویف اخراوی وقتی که خلق می کند اون وقت می پرسی ای بنده آیا این قیامت حق یا نیست چرا در دنیا قبول نمی کردی و یوم یعرضو الَّذین كفروا على النار روزی که عرض می شوند کسانی که کفت کردم بر آتش جهنم تخویف فقروی بر آتش جهنم عرض می شوند جلوی آتش جهنم قرار می گیرند از سوی پروردگار ازشون سوال میشه، شه لهم به آنان گفته میشه، شه علیس هادا بالحق آیا این حق نیست؟ این آتش الان خوابی بیدار می بینی که از جهنم هست یا نیست؟ قالوا بلا و ربنا مجرمين اقرار میکنن بلا بله و ربنا واو وا وا قسمی است قسم به رب ما این حق خب ولی اونجا اقرار کرد دیر شد قال فذوقوا العذاب الله میفرما پس بچشید عذاب را بما کنتم تکفرون بسبب آنچه که شما خوب بودید کفر میکردید شما چون کفر می کردید عذاب را بچشید لذا این وعید بود در آخر خداوند تسلی برای پیغمبر بیان می فرماید شما سوره ها را که می خانید می بینید که خداوند بار بار, بار برای پیغمبرش تسلی شما واقعا رسول الله پیغمبر دلسوز و مهربانی بود خیلی جوش می زد چونکه خداوند دلایل اقلی هم آورد، دلایل نقلی هم آورد، تخویف هم آورد، تبشیر هم آورد، می ترساند، میده می ده، هر نوع دلیل میاره، ولی بعضی مشرکان ایمان نمیارند. اینا که ایمان نیاوردند پیغمبر خدا چنان جوش میزد که نزدیک بود خودش رأس بین ببرد. لعل باخع باخ که ک االله کوون مؤمنین. تو میخوای خودت رأس بین ببری چونی نه ایمان نمیارند؟ تو چرا ناراحتی تو وظیفه خودت را انجام بده کار تو بلاغ است و بس بترسان پیام خدا را بده بیشتر از این تو مکلف نیستی و صبر کن فصبر صبر کن کما صبر اولو العزم همان که صبر کردند اولو العزم بعضی اینجا گفتن که منظور اینه که ای پیغمبر من شما برای این کفار عذاب هم نخواست خدا ولا تستعجل لهم یعنی برای اونها عجله عذاب نکن برای اینها زود عذاب نخواست صبر کن همان که پیامبران اول العزم صبر کردند ببینید یا پیامبران اولو العزم کیا هستند مصداقش کی هست؟ بعضی میگن این قید قید اتفاقی همه پیغمبران اولو العزم هستند اولو العزم یعنی دارای حمت والا دارای عزم و همت مثل این هست که به شما میگویم طلاب گرامی طلاب گرانقدر الان وقتی که میگویم طلاب گرانقدر معنیش این نیست که بعضی گرانقدر نیستن بعضی هستند به چهار تا که گفته شده اینا طلاب گرانقدر هستند معنی این نیست که بقیه نیستند چرا چون همه پیغمبران اولو العزمند این قید قید اتفاقیه این قید مال همه هست. یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم. همان گونه که بقیه پیغمبران اول العزم صبر کردن تو هم صبر کن. اما بعضی میگن نه اول العزم پنجتا هستند. حضرت نوال السلام، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، محمد صلی الله علیه و سلم. این پنجتا اول العزم هستند. فصیر كما صبر اولو العزم من الرسول الرسل کن انجا ابن كثير نوشته این رسول الله را با اون چهار دیگه نوح و ابراهیم و عیسی و موسی صبر کن همان گونی که صبر کردند انبیاء اولو العزم و لا تستعجل لهم عجلنكم براين هاو عذاب را چرا کانهم یوم يرون ما يعدون شدت عذاب خیلی خطرناکه گویا آنها روزی که ببینند آنچه که وعده داده می شوند عذابی که خدا بهشون وعده داده وقتی که اون عذاب بیاد و عذاب را ببینند این طور هستند که لم یلبثو الا ساعت من نهار نماندند مگر یک لحظه از روز. یعنی دنیا کلا فراموش میشه. شه ای دنیا لذت دنیا آغاش هشتات سال سن داشته هفتات سال سن داشته اونجا وقتی که از در روز قیامت بلند میشه چنان وحشتی را گرفته دنیا را فراموش میکنه بهش میگویند که خود تو از دنیا آمدی در دنیا چقدر زندگی کردی قال کم لبستم فی الارد عدد سنین در زمین چند سال شما زندگی کردی قال لبسنا یوما او بعض یوم خوب یادمون نیست یک روز انجا بودیم یا نصف روز بودیم از که وحشت از اونجا تمام زندگی دنیا به اندازه یک روز و نیم روز براش معلوم میشه لذا ای پیغمبر وقتی که اینها ببینن که انهم یوم یون مایون گوی آنان روزی که میبینن آنچه که داده شدن لم یلبتو الا ساعتم من نهار نماندن مگر یک ساعت یک لحظه از روز شما اجل نکن بلاغ یعنی هزا بلاغ این برای اتمام حجت کافی هست به همه رسید هزا بلاغ فهل یه لکو الا القوم الفاسقون بعد از بلاغ بعد از پیام الهی حلاک نمی شود مگر قوم فاسق قوم فاسق یعنی قوم مشرک و کافر کسانی که با شرک و کفر از حد و حدود الهی چی شدند؟ خارج شدا صدق الله مولانا العظيم